اوزو بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعیم، و هوا خیر و هوا، فدر و ارمان رو تقدیم کنیم به محظر متحره محمد و آل محمد الله صلحه محمد و آل اولیش از سی ارول اپنید هایی هست دومیش دو از سی ارول اپنید هست و اپنید هایی پنید هر اول اپنید اپنید مقدم اپنید یه اپنید مقدمی دوتا بود ضرورت ها تو برکی یو سعی استلام. قطعه دیگه شد ما می‌مانیم. بعد وارد را اول می‌زنیم یا فصل اول. فصل اول اقسام سیل اول نیا. تو تو سیر و منات حجیت منات حجیت این سیر تو اقسام سیر اقضاییت به چه بناکی کار کرد سیر چه کار بردی داری یک سیده در دو باگیی به در یک کارچند سیده نمید بکمشه دو رفته به موضوع یعنی کارچندش در باری موضوع هست حالا این موضوعش رو امروز روش میگیم سه موضوع اما رسیدن به حجب شهره هم در دو جاست. یا خودش اصلا یه حجب شهره یا حسوبی. رسیدن به حجب شهره یا حسوبی. پس ای خوبی. این تقسیم مندیه برست تا این جا. اما در مورد منات حجیت سیره ها خب تیجا باید جدا رو میگه سیله ها میگیم سیله های که استفاده در کجمت جمعه کنیش که های مورد استفاده در روش یکی از سه مورد. یا پس من اینجا می دیزن جدا بیان که محل ما منات پرگییت سیده کلوم سیده سیده در استنبات پرک. مرمان بودش خیلی که منات واجیت سیره وقتی میگه منزولمون چیه منات واجیت سیره اصلا مراد ما چی هست منات میلادش؟ منات که ملاش و علت خب این ملاش سبب سبب خودیت سیره چیه؟ ببینیم ما از یک سیره ای به حکم شهر میرسیم حالا یه رفت هم پرسی که به چه دلیگی شما میرین این سیره حکم شهر ای را به من داد؟ سیره هست درسته ولی ملاج این که این سیره شما را به حکم شهر ای میرساند به چه سبب؟ بایله به این اصلا که سیره ما را به حجم شدیم می‌رسانند می‌گه این خب اولیش این است که ما اصلا بعضی از سیره‌ها رو داریم که یدین داریم این سیره صحیح است. پس ملاک عربت، نوگنات عربت بعضی سیره‌ها یا اگری می‌گویم، اگری می‌گویم چه؟ سبوتی؟ بگیم، اگر به گونه ای این بود که یقین به صرفت آن داشتیم خب یقین به صحت آن داشتیم آقای شیخ حساری هم پارسان طول اصلاب گفتیه یقین که بیاد نیازی به جلده و جلده من داره یقین بجاته. این نیاز به هیچی نداره من سیره ای رو میبینم یابینان سالیح از تمام یتیم ها و سیره محمد صادق حالا مسادلش دیروز گفتیم مثلا سیره که مثال سینه که به همه چیزی بود همیشه در هم و در همه زمان ها و همه انسان ها فرفان اما شده میشه گفت این سیره ها یقینا صحیح چون منشأش حالا یا قدرت یا هر چی هست منشأش صحیح این مورد اول از منات و بلاج اوجیه یعنی میگه ما هاجان مگه نمیگی این سیره یقینا صحیحه میگاره می میخواد میگه چه خلافه این چه نمیگی که خلاف سیره ای یقینا صحیح باشد حکم میده یعنی شعره میگه به که بل این سیره که هست همگانی هم هست خیلی هم درست صحیح هم هست ولی من خلاف اون پاک میدم اونجور نمیشه دیگه این اولی من الامر اول رو دوباره میخونم منات اول رو الامر الول چشفها ان صحت ما بنا علیه الاقلاع این سیره چشم می کند از صحیح بودن اون چیزی که اقلا بر اون بنا اند مثلا تو همون مثال اجتماعی زندگی کردن انسان ها این سیره که داریم از اول تاریخ تا آخر تاریخ نشون میده که آنچه اقلا بر اون بنا گذاشتند چه با هم زندگی کنند و اردم خطا هم فیضاله کرد این سیره کشمی کند از عدم خطایشان در آن. این عدم خطا عطفه بر اون صحت هست. و نرزه، قیلو خوب، لا یحتاج العمل و به سیرت اول احتجاج جو به ها. شما بیاید خودتون به این سیره دوباره عمل کنید. یا احتجاج به این سیره بکنید. بگید آقا جان، سیره انسانها اجتماعی عمل کردن است. پس این برای ما بجتید. دیگه نیازی نیست حتی شون بیه که الا کشف الحجب شرعیل مماسل اول مناسب لحا اصلا نیازی نیست طبقه اون معنایی که برای امضا گفته بودیم نیازی نیست شما دنبال امضا اشاره باشید میدونین چرا؟ چرا نیازی نیست در جایی که ما سیرمون کشف از صحت اون مبنای مقرار داشته؟ نیازی به اثبات جعل مماسل این ها نیست یعنی بیان بگیم آقا جان پس شارع حکمی مماسل یا مناسب این سیره جرج کرده است پس به اون حکم عمد نیازی بینم نیست علتش اینه که خود همین سیره خود همین سیره ما الان یقین داریم که صحیح خود همین سیره یقین داریم که صحیح خب تو سیره عمل می لازم نیست پل بزنیم تا از اون پل استفاده کنیم عمل کنیم بگیم چه آجام پل میزنیم به اینجا که پس خود به مماثلی هست تا بتونیم عمل کنیم نه نیازی نیست البته شما ممکنه بگید که بفرمایید که به لخره اگر ای داشتیم چه صحیح بود ای داشتیم که صحیح بود هم صحیح, صحیح بود شاره اونجا به هوچ می داره یا نداره دقت کنید یه متر بیست و چه در دارم می گم شما میگید بالاخره شاره توی هر موزو یه هوچ داره یا نه میگم بله می خب تو همین مورد چه سیره است یقینی هم هست که سعیه شاره هوچ چگونه خواهد بود کاتان هوچ داره هوچ چگونه خواهد بود موافق سیره یا مخالف سیره موافق سیره پس قطعا هوچ مماسه سیره در اینجا هست ثابت میشه کتاب میگه باشه اب نداره ولی لازم نیست لازم نیست توی بعضی از موارد دیگر تو سیره های دیگر ما حکم مماسل رو باید امضا شاره رو ثابت کنیم تا بتونیم عمل کنیم اینجا نیازی نیست چون خود صحت سه، سیره برای ما یقیدیه به نظرم روشن شد براتون شای الله یه بار تو عبارت هم میخونید ببینیم و حین ازه یعنی وقتی سیره چشک کرد از صحیح بودن آن چیزی که اقلا برای اون بنا گذاشتن و میدونیم یقین داریم که خطایی در این مورد ندارن و حین لا لایه تاجل عملو به سیره یا احتجاج به سیره اله چشفل حکم شرعیل مماسل اول مناسب، اون که ما گفتیم یا مواصل یا مناسبه اون سیره لازم نیست هر چند هر چند شما ممکن بگید که آقا جان بلاغره حکم شرعی مناسب یا مواصله او هست دیگه ولا فور از لاوسیه بگید ان صحت ما بنا علی الاقل او ملازمتون لزال کرد هر فرض ما این باشد که صحت آن چیزی که اوغلا بران بنا گذاشتند ملاسم با اون حکم شری است یعنی بلاغره حکم شری است میگه شما منتظر اون نباشید خودتون عمل کنید چون سیره صحیح است یقین به صحت سیره دارید حالا اینو باز میکنه کتاب اینو باز میکنه بذاری، بنویسم برای این تو عبارت می اگر سیره ای بگونه که یک صحت آن داشت یا یعنی به عبارت این گرد سیره چشم می کنن از صحت بنای اقلا در اون موره خوب در این صورت؟ هینه ازم رو هی عمل به چه میگی؟ سیده ای؟ محتاج امزاد شاهد نمی باشد. همون چه گفت حجم یا مناسب؟ یعنی چی بود؟ امضاء او دیگه دیگه منتظر امضاء نباشید خودتون خود امر کنید مشکلی نداره امضاء خارج یعنی جعده هوچ مماس یا مناسب از سوی صاحب منتظر این نباشید بعد و لا رو دارم میگم روح مستی را رو جلد حجم مماسل در چنین سیره با دو دلیل با دو دلیل مفروض است. به دو دلیل میگیم آبا در چنین سیره های اشاره حجم مماسل دریافت دارم. لیوآف همچه تا اول دریافت نشیم. ولی ما لازم است. یعنی صحت این سیر با جله هچ است اما یک لقای دتی دلیل اولا قایده ملازمه این ملازمه قدره حالا یه ملازمه دو او لما دل على عدم خلوق الواغت کچه میشه عدم از حکم شمی یه دوتون رو برد برد توضیح کنم ببینید اگر ما یک ملازمه ای داشته باشیم بر اینکه که خود بوش کنید همینجا بفهم عقل هرچه گفت شارع هم همان را حکم می کند. اینا چی میگن اسمین رو؟ عقل هر حجمی چرد شاره نگاه میکنیم بگو منم هم حجم میکنم مالزم. این قاعده ملازم است دیگه حالا من اگر یه حجم عقلی پیدا کردم که واقعا صحیح بود و اینا از همین قاعده ملازمه استفاده میکنم پل میزنم به حجم شاره میگم اگر عقل من میگه که ظلم قبیه هست پل بزن به وجه بشه بگو شاره همزار رو حرام میداند پس اگر عقل بگوید که اقابه بلا بیان قبیه هست عقل میگه ملازمه میاد وسط به من میخیره پس اقابه بلا بیان در نظر شاره هم امری حرام است جایز نیست قیل جایز است این ملازم است حالا چرا که به این بعض ما داشت این رفتش فقط صرف هم ملازم است. حالا به جای حکم عقل شما حکم عقل را بیارید بگید اگر همه اوغلا سیره ای که یقینا این سیره شون هم و ما یک قا... ما یک قاعده ملازمه هم داریم یک ملازمه هم داره اگر اوغلا همشون صحیح هم سیره ای داشته باشن و بناشون صحیح باشه بگید ملازمه طبقه ملازمه, طبق ملازمه. شارع هم همون رو سهله میذاره همون رو حجم میکند خب نتیجه این ملازمه تو این بحث ما چی میشه اون چی دیگه میشه که همین سیره همه گانی که همه داشتن شارع هم طبقه حجم داره پس حجم به دست میاد حجم مماصر این دلیل رفت قاعده ملازمه کتابه ببینید ولو فور از آنچه که حت آن چک بر آن بنا اند ملازم است با جله حجم مماثل به خاطر یاد دلیل اول اموال قاعدت ملازمه روی قاعده ملازمه اینو بنویسید حتماً این توضیح یعنی بین حج مشارع و سیره صحیحه عقلا ملازمه با جود دارد منظور این اینه اگر می توضیح بیشتر بدید بنویسید که هرگاه سیرهی هم بر عملی بود بر عملی بود شاره هم حتماً به حکوم می کند خب این معلوم شد پس حکوم شده حالا اون مثال که ما زدیم اگر بپذیریم که این مثال درسته که سیره همگانیه همزمانیه در کل احسار و اینها رو داریم و همه انسان ها و در همه مکان ها داریم که زندگی اجتماعی برای انسان ها هست اجتماعی... طبقه این قاعده ملازم معلوم میشه که حکم خود چیه؟ حکم خود که انسان ها باید زندگی اجتماعی داشته باشن لذا اگه نفر زندگی فردی داشته باشه این حالا مطلوب نیست مطلوب خدا نیست حالا یا حرامه یا منشون اگر همه حال رو بپذیریم همین این چیدیم رو بپذیریم ممکنه نفر مثال رو قبول نداشته باشید بگی نه یقیی نیست یا کسی بیاد ملازمه رو نپذیریم ممکنه ملازمه ممکنه ملازمه رو نپذیریم بگیم آزان سیره است همه مردم اینجوری بودن به من این نیست که هم تبقیه به اون حکم میکند یا نه ملازم با حکم شاره هست یعنی اگر همه مردم اجتماعی زندگی کرده اند، پس معلوم میشه که اجتماعی زندگی کردن مردم نزد خداوند حالا نگی من محطوب هستم بگیم جایز است. جواز انگار میاد انگار جواز میاد جواز درسته ولی اینکه مستحب یا مکم یا واجب باشه اینش خود سخته ولی جوازش شاهده به نظر میسیم شون حالا این جای بخش داره دیگه اول ما در یا دلینه دوفن دلینه دوفن رو اول توضیح دادم من برای جام. یه لحظه من ببینید ما میگیم آقا جم توی این کار سیرهی وجود دارد که یعنی صحیح هست حالا آیا حکم خداوند در این مسلم طبق همین سیره هست یا نه میگن مگه قرار نیست هر کاری یه حکمی داشته باشه از سوی خداوند می گاره بقول خود اینجا هم حجم حتما هست دیگه هیچ واقعی نیست که خدا حجم نکنه اونجا الان منجا نشستم حکم می‌دارد الان فکر می‌کنم حکمی داره نزد خدا نگاه می‌کنم حکمی داره حرف میزنم حکمی داره شما دارید پوش می‌کنید حکمی داره ببینید هیچ واقعی بدون حکم خدا نیست هر جا جایز حالا اینجا هم. این سری ای که اوغلات تبعش عمل میکنند؟ بلاخره حکمی داره یا نه؟ این بله. فلخ خب خود خدا موافقه سری یا مخالفه این سری؟ باید موافقه شه. پس اون جهلهوش طبقه این حتما اثبات میشه. لذا دومیشو من نوشتم. ادله دال بر. عدم خلوف واقعه از حکم شرعی. این نشون میده که در جنب حکمی جلب شده است. بسیار خوب. اول ماده اعلی و خلوف واقعت ان الحکم الشرعی من جلعه این نوشتم که در اینجا این, این پوچ مطابقه سیره است. بسیار خوب آیه پوزداری میتونستید این ولافورس رو داخلی پراتز قرار بدید داریم رو براتون تحلیل میکنم حالا من از اون بدونید دیگه حالا این ولافورس وارد این بحث شد که آ یا بالاخره اونجا جل حجم مماسل و ناس اشاره داریم نه؟ میگه با دو دلیل میشه این رو فرضش کرد والله اصل بحث ما این بود که مناط حجیت خود همون صحتشه پس اولی منات خود صحت همون سیره اما دومین منات دومین منات اینجا می نیمسن مناد دو مناد دو می نیمسن. اعلام پرجیت سیره اکسیره تلسف خود مولا سه رو همگذار یا جا سه هم کشف امزاد شاره یا کشف لذایت شاره بذارید هر سه من ها توی سیده رو که شما در راه اسم با ها بکار میبرید. یه وقت خاص خودش یعیناً صحیحه خب صحیحه میگه دیگه اون حجت دیگه. دیگه تمام یه وقت خاص یعینه به صحتش نداریم ولی میبینید که مولا خودش گفته است مولا خودش گفته آقا جام. این سیره چه به کار میاره سیره خوبیه قبول دارم این رو خودش گفته خب رو سیره چیه و چجوری شده یه وقت خاص مولا نگفته ولی دقت کنید در مقابلش این سیره انجام شده مولا هم کاملا دیده این رو و ما میبینیم پس راضیه. حالا چه راضیه؟ پس میشه قجم دیگه این به سه به سکوت مولا آله آله. شما حالا اینجا، این ستا که به تو گفتم جمع شد یه جا حالا به تو کنم این بپرسم در کتاب مزفر کدوم یکی از این سه تا هات دیدیم یقین به صحتش داشتیم یا خود مولا اعلام حجیت برای یک ای رو میکنه یا نه از سکوتش رضایتش رو به دست می و در نتیجه امضا شد. مو سهومی رو میدید. اینجا دو تاش در واقع اضافه حالا این دومی دو رو ببینیم. امر ثانی امر شارع بل ببینید امر کرده. شارع میگه آقا شما این سیره عمل کنید. یعنی خودش اعلام می کرد. من من که برای شماره دو انتخاب کردم اینه شاره خودش اعلام میکنه حجیت سیره را با اولییه چه فرقی داره اونجا اصلا اعلام شاره نیاز نبود امضای شاره هم حتی گفتیم نیاز نبود پس این نکته خوبیه این رو تو شماره یک میتونید بنویسید بنویسید فرق امر با امر این است که در امرسانی اعلام مولا باعث حجیت میشود ولی در امر اول اصلا نه اعلام مولا لازم است نه امضای مولا لازم است خود سیره خودش داشت میگفت من حجتم حالا این امر سانی رو بخونیم عمر شاره بالعمل علا طبقه ها شاره میاد میگه آقا جان این سیره که شما دارید ازدواج میکنید خانواده تشکیل میدید این سیره خوبه این سیره رو انجام بدید بله آهی کسری خوب بود طبقی خب. سیره مثلا همین سیره نکاح رو از الات فرمونده که اصلا نکاح و سلمت اصلا سلمت منه خب این یعنی اعلام شاره حجیت همچه سیره ایداره یا اعلام شاره و این که به همین سیره عمل کنید خوب، ادامه بدید اما خیلی از سیره ها رو شاره اومد چیکا کرد؟ این رو اعلام نکرد. و بعضی از سیرها ها رو هم اومد گفت که اصلا نکنید این کار رو مثلا ازدواج پسران با زن بابا هاشون زن پدرانشون وقتی پدر میمون با زن پدرانشون ازدواج میدوند اشاره گفت که این کارو رو نکن این سیره غلطه این کار رو انجام ندید پس این برعکس این ربط میشه امر اشاره بر عمل طبق سیره جلوش میخواد ترجمه فارسی شو اینجوری بدوست بنویسید سید مولا دستور به عمل برطبق سیره میکند مثلا عمله به سیره ازدواج یا تو اصول عمل به خبر ثقه اینها رو شاره انجام بده او جاء له مناش الحجیت لها بعضی وقتا اشاره نمیاد بگه که به این سیره عمل کنید بلکه میاد میگه که هر کی به این سیره عمل کرد معذور است هرچی به این سیره عمل کرد پیش خدا معذوره خب اینم معذور بودن یکی از منشهای. هایه یعنی یکی از اون شاخصه های حجیته دیگه اگر اینم بگه خوبه بلو میشه این سیره حجته مشخص شد یعنی به جایی که خود سیره رو بگه یکی از اون شاخصه های حجیت سیره رو برای اون سیره اثبات کنه خودش آره حل دیگه سیره حجیت میشه او مناش روی مناشه حجیت می بگید شاخصه های حجیت منشه حجیت محضور یعنی همون چیزایی که حجیت از اون درمیاد که یکیش محضور بودن معذریت اینچه معنای متقدم در همون معنای حجیت که یکی دو سبقه قبل خوندیم اونجا گفت مراد او نابل حجیت احتجاج یعنی بشه بهش احتجاج کرد بلمالام که تعزیر و تنبیه است خب صحت اعتراض یعنی که آقا من محضورم دیگه در دل صحت احتجاج این هست من عذر دارم لذا اگر مولا به من بخواد توبیخ کنه بگه چرا این انجام دادی من عذر دارم احتجاج میکنم علیه اون میگم که مولای من تو سیره اینجوری بود خودت گفته بودی تعزیر و تنجیز تنجیز هم از طرف مولا مولا میگه آقا من سیره اینجوری نبود مگه سیره عمل بس قول سقه نبود پسر عمل نکردی منجز شد بین تعذیر و تنجیز حتما فکر کنید فرق بذارید این اگر تا حالا جا نیفتاده این رو جدا کنید الان توضیح دادم بسیار خوب میگیم آیه نویسنده ی کتاب چنین چیزی رخ داده است میگه برای بابا کما سنه ها به نسبت علا بعض الامارات زنیت چه خبر واه شاره مقدس در مورد خبر واحد که یکی از امارات زنیه هست اومده و دستور دادی که به این سیره عمل کنید آیا در جا کجا دستور داده عمل کنیم به خبر واحد آیا از کجا دستور داده نه نه نه اون جاش رو نشونم بده خدا چه گفته به خبر واحد عمل؟ بالا دیگه یا ايها الذين امنوا انجاكم فاسقم بنبأ فتبينوا که طبق مفهومش میگه یعنی به خبر عادل واحد عمل کنید دیگه این همینه دستور به عمل مثلا فا ان نسیره الاقلاء عقدت على به خبر واحد اوقلاء از اول به خبر واحد عمل میکردند و شاره او ايضا امر بالعمل بهی روی این حتما بنویسید در آیه ندر مشخص بشه برازم البته این هم دویه چیز یعنی ما فضا قلیمونو ببریم <تصفح> فضای زمان محصول مثلا ما یه جمعی هستیم به این ما یه جمعی افراد شاخصی هست مثلا شما مثلا و چون از هر جمعی قبول دارم چون یک کلام ما فکر گروبم به در مانی به بزنی خبر مانده بودم آمن فلا اوزی خودمون بلی دیگه. بلی دیگه. بله دیگه بله. بله بله پس معلوم میشه سیری اقلا بر عمل به خبر سقه یعنی بهش اطمینان داشتن یا عادق حالا همینی که اقلا طبق همین عمل میکنن شاره هم همین رو اومد و گفت ببینید منات شمان دوبون در واقع اثباتیه یک چیزی میگه اما مناط شماره سفون نه چیزی نمیگه سکوتش میفهمید حالا اینجا شاره تو آیه نبه که گفت, گفت به این عمل کنید دیگه برا و شاره ها ایزا به عمل به تو آیه نبه و اینها او اللهو. یا اینکه که شاره میاد و میگه که آجان هر کس به, به این خبر سقه عمل کند مجدور است خب یکی از اون مناجه حجیت رو برای عمل به این کرد قرار داد معلوم شد این دیگه ببینید پس اون بحث اصلی ما من که مناد حجت سیره است همینه دیگه در رو چه حسابی این سیره حجت هست شواره خودش کفت خودش بگه بشه عمل کنید به این سیره و یل حقو بهی احالت و شاره ناسه شاره احاله می کند مردم را می فارسی جوی. حواله میدهد دهد فارسین شوید حواله مردم را الاما تحکمو به بهی اگولو ببینیم بزاد این رو بنویسن این اعلام حجت یک سیره تا حالا دو جوریش رو جو این هم سفا میشه این ببینیم شاره چطوری میگه یک سیره حجت است. یا یک این یکی شعار فوزنی بیدم دو شعار ندیاباری سه شعاره هست یک دنی سیره حجت هست چون شاره گفته حجته خب شاره چه مدلها میگه یک آره کنسر یک امان کنسر دل کنسر امان کنسر ها همون چون نوسته بگه مولا عمر میکنه که آقا به این سیره عمل کنید به سیره ازدواج بین خودتون عمل کنید به قبره عمل کنید آیه نبدین این دو آیه ای دو دو اون چی گه چه اگه از خودت بگیم اون سه دیگه یه حرابه سه یه حرابه شماره دو دو رو پیدا نده کنید اون یه جوابا جایه دو دوباره میخونیم اگه بارتی برده که ببینید امر و شاره بله عمر علا طبقه اون سیره او جر مناشه اون؟ مناشه اون چیه دیگه؟ پس تو جهره حجیت برای سیره یعنی جور شاره میتونه بگه آقا این حجت این سیره حجته خوبه سه جور یک میگه آقا به سیره عمل کنی دو میگه هر چی عمل کنن محضور است سه حواله میده شما رو میگه در مورد سیره به تماید این سیره و عبد خودتون مراجعه کنید الان ما میگه که سیره خوبه پس میشه حجیت آو او یل حقبه ملحق میشود به این امرسانی احالت و شار اناس و ما تحکم و به ای و گول باب سیره در باب سیره عقلتون چی میگه مثلا میگه که بره آه جان ما به سیره اوغلا در مورد خبر سقه اگر عمل نکنیم بدبخت میشیم بیچاره میشیم میخیل گفت همون رو بگیرید بگیرید حالا یه سوال چرا اینا میگه یل چرا میگه یل حوا تا میخونم شما روش فیت بگیرید من دون امرهم بالعمل او جعل الحجیه لها یعنی شماره یک و دو نیست این شماره سه هست که البته... البته ملحقه به اون شده دیدون چرا علتش که آه، عمل آها چون در مورد خود سیره حرف نمیزنه میگه به عقلتون مراجعه کنید درباره سیره به عقلتون مراجعه کنید اگر عقلتون سیره رو پذیرفت عمل کنید اما تو دو, دو تا قبلی مستریم خود سیره رو میگفت میگفت به این سیره عمل کنید شماره 2 میگفت این سیره هر چی عمل کنه معذور است اما تو سه میگه به عقلتون مراجعه کنید ببینید سیره رو پذیرفت عمل کنید پس به سه روش خداوند میتواند اعلام کند که آجان این سیره اجت هست مناتو اجت همی شد کسی یقی یعنی شما نگید چرا به این سیره عمل کردیم چون شعار خودش گفت اما سه ومین الامرا ایجا باها ولا به بعض زمانه چه عدم رد او غیره ای ممیات ممایت تعض و له لهو بعدا اینا رو بهش متعرف میشیم، مع اولت نم به امضا شاره له ها ببینیم سرش همونطور که اونجا نوشتم. اینه ما اگر یقه ما رو گرفتن گفتن چرا به همجنسیره عمل کردید میگه چون ما امضای شاره را کشف <تصفيق> کردیم پس سومیش اونو نوشتن کشف امضای شاره چه جوری کشف میشه با هیچ چیز مثلا با سکوت اشاره همون که گفتید به بعضی زمایم سکوت کرده در و مسمیش بوده میتونسته اعتراض کنه می این اینو رد کنه نکرده پس میشه که راضی بوده راضی بوده امضای شاره حاصل میشه یعنی جلح حکم مماسق اینجا دیگه جلح حکم مماسق اینجا هستا تو این صورت اول که صحت سیره بود اونجا نداشت نداشته همه تو این دومی و سه بومی جلح شاره سیره هست حکمی مناسب اون سیره هستش خیلی خوب الامر سالس ایجابه آن سیره چه چیزی را؟ علم را یا اطمینان را به این شاره رازیه به امضاء اشاره لها وقتا گفتیم منظور از امضاء هم صرف رضایت کافی نیست ای به جلهی الحکمر مماصله اول مناسب لها حکم مناسب یا مماصل رو جرب کرده است. خیلی خوب اون بعض زماهم چیه؟ میگه خب ببینید ما یک سیره داریم خود همین سیره همونطور که جلسه قبلا گفتم سیره و مثلا داریم که برای داریم که اوغلا در مثلا مثلا لباسو بلند و ظریف تری خب این سیره کافی نیست که تو حکم کنیم باید ببینیم که شاره هم اینو دیده و اعتراضی نکرده پس معلوم میشه جایز است خب همین اینو دیده و اعتراض این چه زمیم کردن بعضی از نکات به این سیره اینو میگه ولو به بعض زمان چه ادم رده این که شعره درد نکرده است او قیلهی چه بدن مفصل و از خواهد شد ممایت تعرض و اینها باعث میشه ما مطمئن یا آلم به این میشهیم که شعره این رو امضا کرده و حجم مماسق یا مناسب را جل فهم بودن بله رد یعنی منم رد یعنی من کردم بله بسیار خب اینم از سومین منات حتما اون عنوانهاش رو بنویسید. عنوان کل این دو زخط تحت این عنوان کشف امزای یا تو قبلیه اعلام شاره تمام فما الیه. اون چیزهایی که بهش استناد می سیره هایی که بهش استناد میکنیم حکم صادر میکنیم تبراو لی اثبات اوجیت سیره لابده ان یکونه متکفلن به تحقق اهدهاز سلاسه برای حجیت سیره هر چه شما استدلال خواهی کرد این تو یه ای بار دیگه میکنم ترجمه شما آن چه به آن استناد میشود برای اثبات حجیت سیره شما بعدن اشهالله مفصل میخونیم که سیره چرا حجت است. هر دلیل رو بردید برای اثبات حجیت سیره یکی از این سه تا رو باید برید یکی از این سه تا منات رو باید ثابت کنید تا حجیت سیره ثابت بشه لابدن یکونم متکفلن اون دلیلتون متکفله به تحقق عهد حاضر سلاسه باشد که علتی یعب آنها آنها به ها مناطات حجیت سیره ایناست یعنی شما ادله حجیت سیره آوردید، حتما همینا رو ثابت خواهید کرد یا اولی یا دومی یا سومی. یه سؤال دو غمی, غمی با هم قابل جمعن هم؟ یا همون یه دونش کافیه؟ یه دونش کافیه؟ یا نه اینا باید جمع بشن؟ اصلا قابل جمع هستن؟ مثلا دو غمی, غمی قابل جمع نیست چون اعلام شاره شماره دو بود سکوت شاره رو میخواستیم پس با اعلام شاره یه جا جمع نمیشه لذا همون یه دونه از این ها براتون حاصل شد همون حجت،, همون حجت سیره ثابت خواهد شد اون سیره حجت است بسیار خوب روشن هست مطلب اشالله براتون نیه حتما این،, این هم چه نوشتم یک اکسی هم بگیرید آید. تو گروه هم بذارید طبق همین نمودار مطالعه کنید مطلب فکر کنید اشالله چیزی مبهم نمانه اما الخسم و قسم سامی یعنی که به حج مرتبط است. نده چی به موضوع مرتبط است نده به قسم سامی سیر مرتبط به موضوع این امروش اول بود که به حج القسم الثاني از سیرال مرتبط تو به موضوع الحکم شرعی تعبیرش اینه سیر مرتبط چرا چون خود همین سیرهای که به موضوع ربط داره خودش سه جوره که با هم فرق میکنن لذا ایشو کلی گفت او سیرهایی که به موضوع مرتبطه حالا یه عنوان کلی هر ستا رو جور دیگه نمیشود همین جوری آورد مرتبط گفت که مشکلی پیش نه تندس محازه سیر و انواع سلاستن کما یعنی این سیره ها محضور از این سیره ها یعنی سیره که به موضوع مرتبطه سه جور سه نوع قسمت میشن تقسیم میشن کما یعنی ما یک اونو به نفسهی موضوع اندل حکم شریف. انا نو سانی ماله و دخلون فی تنقیه الموضوع انا نو سالس هم بعد از اینکی دو صفحه بعد از اون ماله و دخلون فی تنقیه الموضوع و تحقیل اثباتن شماره دو نوع سانی سبوتن نوع سالس اثباتن دیگه اونجا جا نیست من اونجا بنویسم فقط نوع اول شد بخونی ببینید بعضی این وقتا خیلی روشده خیلی ساده است من یه لحظه نگاه کنید. الان دیگه فضای ذهنتون رو عوض کنید الان سیره های رو مثال میزنیم برای تون که ازش به حجم شهر نمیخواهم برسیم به حجم برتی نداره اما شما یه حجم رو در نظر بگید از تو ما تو موضوعش با سیره سر و کار داریم نرسیدنه به حجم بچه تو خود موضوع چطور مگه میشم چیزی؟ میگم بله ساده ترینش اینه چه خود یک سیره ای همینجوری یه سیره خودش موضوع حکم شدی باشه خودش موضوع حکم شدی باشه یعنی مثلا حج شریه بگید مثلا حرام است حج شریه بگید حالا موضوعش چیه چه چیزی حرام است یه سیره بیارید مثلا سیره اقلا که دیروز اجابه مثال بزادن مشروب خوردن خب سیره نیست. اگر سیره بود این سیره این سیره حرام است. خب خود سیره شد موضوعش بشه. دی. ببینید از این اصالتا دیگه یا فرض کنید سیره ای داشتیم قبل از انقلاب تشبه مل کفار ماردها کراوات می‌زدن. استفاده دوخادتی ای سیره است. سیره است. اگر شاره بیاد خود همین سیره را که این سیره یعنی اینکه سیره شده بین شما ها این سیره جایز نیست برای درمه این سیره حرامه خب سیره خودش رو به موضوع حجم پس این مدل دو ببینید ما نیازه به رسیدن با حجم اینا نداریم حجم خودش مشخص نیازی به سیره نداریم ولی موضوع با همین سیره مشخص شد یعنی خود سیره موضوع حکم شرعیه تو بیدین مدل اول خیلی راحته اناوال اول اولو ما یکونو یعنی اون سیرهایی که یکونو به نفسهی خود اون سیره موضوع للحکم شرعیه رو حکم شرعیه به نیمسی پسند جواز و حرمت روی نخواه که روشنگ شه توضیحش تکون سیرت و اقلائیت و به نفسه ها خودش موضوعن للحکم شرعیه موضوع حکم شرعیه چما ها امر المولا به نقض سیر الفاسدته مولا خودش میگه بیگه آقا جم سیره های تو کلی میتونه باشد مولا بکنم سیره های فاسده را حرام است ادامه بدهید سیره های فاسده را واجب است نقض کنید نقض سیر الفاسدته او نه و نهها نها بخونیم این فعل نه نخونیم نها این ان نبز سیره سالحه داریم همچه چیزی آره بل خیلی کمه مثل قولهی علیه السلامه ولا ترمو به اون مثالت که من زدم یه نکته ریز توش هست اینو توجه نکنید چاید به درشت مثالت که زدم همون شما هم گفتیم و همون همینه ها حواستون باشه اگر مولا بیاد بین که استعمال دخانیات حرامه این برای اینجا مثال نمیشه اگر میخواید برای اینجا مثال بزنید اینجوری باید مثال رو درست بگید سیره شما اقلا در استعمال دخانیات این سیره حرام است مطمئن شدید لذا این رو من همینجوری مثال زدم ها سیره اقلا در عمل به این ازدواج میکنم این واجب است اینجا این سیره موضوع شد اما اگر میگه نه ازدواج خوب است مطلوب است مستحب است. این دیگه مثال سیره اینجا نشد که چون موضوع سیره نیست که موضوع خودمون فعله لذا حواستون باشه مثال رو به خود سیره بذار بزن. مثال بزنیم مثل قولهی علیه السلام و لا تنقص نقص نقص نکن بین نبر سنت صالحی را که عمل به آن میکنند عمل به ها صدور و حاضه الام سود روش بزرگان بزرگان اینو امت اون سیرهای رو که بهش عمل کردن اینها رو نرز نکنید و اجتمت بهالالفه اون چیزی که باعث جمع شدن و الفت و الفت به که اینها با هم اون سو آره اون سو چیز دارن در مقابل وحشت هستین اینها از هم فراریان هم نه اینها به هم الفت درن و صلاحت علی هر رعیه اولفت با این شکل گرفته رعیت هم با این سلاح, ب... سلاح پیدا کرده ولا ته دسن سیره ای را ایجاد نکن ببینید خود سیره موضوع حکم شریست چه تذر رو به من مازی تلکست سنن گذشته آن سنن را بهش ضرر بزنه همچین سنتی را ایجاد نکن پس خود اون سنت خود اون سیره موضوع حکم است. بسیار خوب سلامه خوب شیست اللهم نسان این حدیث رو چی نوشته اونجا نه. نه. نه. بنویسی توحف دعایم و نهچو بلا توحف و دعایم من از نهچو بلا قبل ترمید منبع اصلی ایمان این موقع هست. از خواهی میکنم به برشت نه چارسد و سیری کسی نداریم صحفی چارسد و خطبه نیست هسن. این نامه انجام داده شده چه تا این نام است؟ آقا مخفف آن معنی خدا نگهدار. حداقل یه مطالعه و مبادله بکن که این اگر نمونه ام حداقل اشغال. خدا